دیگه. یعنی منصوبه به سمد مثل فاتمیه یعنی منصوبه به فاتمیه خب حالا چرا نمیگه هاذا کتاب و سمدیه بدون تا مثل فاتمی مگر این مهندس بوده که میگه از سمدیه جواب این سوال اینه که اگر از سمنی سلام من از اومده به اعتبار موسوف مقدرشی یعنی اصل اسم اسم کتاب ما این بوده آزا کتاب هدائق هدائق با هجیمی و همزه هدائق از سمدیته یعنی این کتاب هدایق سمدیت است، هدایق جمع هدیقه پستان بعد هدایقی که موزف بوده حذف شده سفر جاش شده, شده سمدیت مثل اینکه در عبارات ما داریم مؤمنون خیرون من مشرکه سلام مؤمنون خیرون من مشرکن یعنی چی؟ یعنی عبدون مؤمنون آه. بنده مؤمن خیرون من مشرکن عبدش چه شده؟ پس بنابراین هازا کتاب و سمدیت یعنی هازا کتاب و هدائق از سمدیت اون یا رو بهش میگن یاه نسبت یای مشدده و تا همجدهای تنزی حالا اگر مثلا زید ما داشته باشیم این زید سید هم باشه میگیم زیدون الفاتمی یه زیدون الفاتمی یو. حالا اگر زید نباشد و هند باشه و سیده باشه چه میگیم؟ میگیم هندون یا یه این هم همین حداق و سمدیت. حالا سمدی چیست که به او این کتاب نسبت داده شده در متن مشخص بشه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله اسم اضافه شده به الله مختصر آنچه که تو کتاب عوانه گفتیم به اسم جار و مجروره متعلق است به یک فعلی که مؤخر تقدیل میشه یعنی بسم الله عبداله او. اون او آخر به نام خدا شده یا بسم الله عقره او به نام خدا می خوانم حالا اگر هنگام خوردن باشه بسم الله آگلو بعضی ها فعل های مقدس به فرینه عمل تقدیر می گیرن و بعضی ها خود فعل عبتده و آغاز می کنم رو تقدیر می گیرن که برای هر فعلی هر کاری ما می توانیم بخار. الرحمن و الرحیم هر دو صفت هستند برای الله و میبینید که مشهور هستند. ما قول تقریباً مشهور کنم بلا در این بسم الله فراکی به مشکل و زیاد بچند. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دقت کنید پایین احسن و کلمتن سلام احسن و کلمتن یبتده بها به ها و, و خیر و خبرن یختتم به هر مرامو همدو که اللهم همدو که مبتدای مؤخره یعنی همد کردن ترا یعنی در واقع همد اضافه شده به چی؟ به مفعولش فایلش عظم شده مستر دیگه یعنی همد کردن ما ترا بوده به همدونا یاکه اینا که فایل بوده ذکر نشده و همد اضافه شده به مفعول همدو کرد یعنی ستایش کردن تورا ستایش کردن کی ستایش رو بکنه؟ یعنی ستایش کردن ما هم بکر اللهم هم که یا الله بوده یای حرف ندا از لفظ الله میفته و به جاش میمه مشدده میاد و این دوتا با هم هم جمع نمیشن عوض و محوضت شده خب حمد و که مبتده مؤخر. احسن و کلمت خبر میگه ستایش کردن تو حمد تو بهترین کلمه است، احسن و کلمتن. بهترین کلمه بهترین چیزی که از دهان خارج میشه همد کردن توست احسن کلمات. احسن اضافه شده به کلمت افعال تفزیل. و افعال تفصیل موقعی که به نکره اضافه میشه ترین صفت آهی احسن و کلمت. یعنی زیبا ترین یوپ تداو به ها علی کلامو یوپ تداو به نمادشو به ها متعلق به یوپ و بر میگرده به کلمه آ. علی کلامو نافایی معنی یوپ تداوی فیلماتشو. این جمله یوپ به علی کلام بعد از نکره کلمه میشه چی صفت؟ جمله بعد از نکره سفر پس این شد همد کردن تو ای خدا زیباترین کلمه است کلمه ای که آغاز کرده می شدد با آن کلمه کلام زیباترین کلمه ای که با آن کلام آغاز می گردد و خیر و خبر خیر و خبر م به جای احسن و بهترین آه. و بهترین خبر آه. بهترین خبر باز مضاف و مسافانه دهیم خیر هم اخییر بوده دیگه تفسییل مثل احسن. خیر و خبر یختتم و بهل مرام. مرام مستر میویست از رام یروم رام یروم و راومن یعنی قصد یقصد مرام میشه مقصد و مستر به معنی اسم یعنی مقصود مستر به معنی اسم مفهول می آید داشتیم که چی؟ خلق به معنای مخلوق خیر و خبره و بهترین خبری که ختم می شود منتهی می شود به آن خبر مقصود ما بهترین خبری که مقصود ما به دو منتحی می شود چیه؟ پس همده تو زیبا ترین کلمه است که سخن باش آغاز میشه و بهترین است که مقصود ما با او کمام میشه یختتم و مرام مثل یختده و بهل کلام جملهش هم صفت خیر است مثل اون که صفت کلمه و جمله اگه صفت باغمه شد محلا محلن محلن محلن محلن نزا میگیم این جمله یختتم و بهل مرام محلن مجرور صفت خیر صفت خبر و های بیهی هم رابط صفت به محلن پس همدو که اللهم احسن و کلمت یبتدو بهل کلام و خیر و خبر یختتم و بهل خب حمدش ایم کنیم حمدو که حمد می کنیم تو رو بر چه چیزهای تو حمد می کنیم میگه حمدو که ال جزیل انعام یا جزیل انعام هر دو درست است حمدو که الا جزیل انعام همدو که علا جزیل انعام انعام بخوانی درستر بهتر یعنی چی؟ نعمت دادن انعام و یون اما و این علا جزیل جزیل یعنی کسیر جزل یعنی کسفل علا کسیل انعام یعنی هم می تو رو بر این علا مطمئنه به هم و ما الله اینا جمعی مطمئنه هستی میکنیم تو رو علا جزیلن انعام بر جزیر و کسیر چی؟ نعمت دادن هست این که بسیار بسیار بر ما نعمت میکنیم. ما بر این نعمات کسیر تو تو رو حمد تو حمدو که علا جزیر الانعامه یعنی کسیر الانعامه انعام بخواهد خب و سلات و و سلامه حالا رسیدیم از هم دو بود بسم الله آره شدیم به سلات و سلام بسیدیم و و و سلامه علا خبر قبر و سلام. و سلامه. سلات و سلام بر سیده و انام بر سروره انام انام یعنی مردم ناس گل سرسبت آدم خیلقت نبی گرد میگه صلوات و سلام بر سید انام علا سیده انام انام یعنی چی؟ مرضون. و لعرضه وزعه ها انام تو قرآن داریم یعنی چی؟ یعنی زمین وزعه کردیم نهادیم برای حالا سید لعنام محمد عطف بیان هست برای سید و سید لعنام که محمد و آلیهی و همچنین درود بر آلش صلاح و سلام بر آل محمد و عالی آل محمد چه سفاتی داره میگه البررت لکرام برره مثل طلبه که جمع طالب بود برره جمع باره باره یعنی چی؟ نیکو کار کسی که نیکو انجام میده بار رو. هل یعنی عالی که برره هستن این که کرام جمعه کریمه یعنی کریم هم به معنای جواد و بخشنده و بافضل و کرم و هم به معنای کریمه یعنی اصل و نصب درست داره یک کرام یعنی اونهایی که از و نسب درست دارند و جزء عجوان عربا جدا را کرام سیگما سیگما چه جور میشه این سیگما رو خوند بعدش ابن عمه هی ابنه ام میهی ابنه ام میشه بخانیم حالا تو انشالله هدایی خواهیم بسید به این که اگر محفظ بخانیم چیست منصوب بخانیم چیست محفظ بخانیم چیست, خانیم چیست؟ سی یما در استلاح علماء بدون و ولا به کار نمید. حتی بعضی از نهاد قائل هست اگر دیدید سیگما بدونه ولا به کار رفته یعنی ولا گفته نشده بدانید که قائلش عرب نیست بعضی این قدر اونی که وجود دارد ولا سیگیماست ولا سی یما. حالا ما این خوندیم ولا سی یما ابنو امهی برفت صورت رفتش رو بهتون یاد بدیم پس سی یما مخففه چیه؟ ولا سی یماست. و افسه هم ولا سی یماست. نه سی یما حالا اگر بود ولا سی یما ابنو امهی علی گون. این علیگون گون عطف است از برای ابراهیم اگر ابراهیم بهی رو منصوب بخونیم ببینم بعد بخونیم چی بخونی بخونی؟ علی مجبور مجرور بخونیم ببینم بعد بخونیم علی تابع دیگه علیه السلام که علی خبر مقدم از سلام مبتدا مؤخر این جمله دعاییه جمله معترض است که بر اون دوریک با حالا اگر ولاسی اما ابن امهی به خانیم چجوری ترکیب کنیم لالای نفی جنس دارم ترکیب حالت رفتیش رو میگم در یک صورت دیگه نصفیش رو میگم در یک صورت دیگه جنفیش رو الان صورت رفت کنیم لالای نفی جنس سیه اسم لا سیا اسم لای نفی جنس سیه مامای زایده اینگاه گفته لا رجوله سیا هم بوده سویه سیه هستش بوده چی؟ سیگه و یا کلمه جمع شده سابقشون چی بوده؟ ساکن بوده واقعا ببه یا یادت یادت کام شده سیگ و سیگ هم به معنای مثل سیگ به معنای چی مثل پس شد لالای نفی جنس آه. سیگه اسم الله ما ما رو بگیرید مای محصوله ما رو بگیرید مای محصوله بذارید صورت راحت ما مای محصوله یعنی انمزی خوندیم دیگه مای محصوله به معنی انمزی ابن عمهی خبر مبتدای محظوف یعنی هو و ابن عمهی یه حوه داشتیم که محتدا بوده ابن عمدهی خبر و این جمعه سره ما و آهد سرهش هم همون زمیر و حوهی محصول آهد هم همون زمیر و حوهی محصول خب لای نفی جمس سیه اسم ما مضاف و نلعی سیگه بهش از آن خوش مزاق و دلید مصور مبتدا و آهد سله که مخزوفه ابن عمهی خبر حوان این جمله سله ما بعد دقیق خبر لای نفی جنس موجودن یک موجودن ما موجودن مقدر سلامتی خبر لای نفیه چنس باشی و لا سی یا لذی تقدیر میشد و لا سی الازی. یعنی ولا مسیر ولا مثل باشدی او و ابن امهی موجودن پس معنای عبارت اونم میشه چی و نمی باشد مانند کسی که پسر اموی اوست موجوده در این عالم این اونی که پسر اموشه یه جنسه دیگر مثل او وجود نداره میشه همین خصوصا ولاسی اما از نظر معنا یعنی خصوصا یاد میگیرید ولاسی اما یعنی خصوصا ابن همی پس موقع ترجمه ترجمه میکنی چی؟ خصوصا اما اگه بهتون گفتن ترکیب کنید ترکیب رو چطور ترکیب میکنین؟ ماننده همینطور که من خدمتتون عرض کردم صورت رفعش لای نفی جنس نسب به اسمش میدهد و رفع به خبرش الان دیده نسب به اسم داد و رفع به خبر این هم یکی از عواملیه که بهش میگن لای نفی جنس خب سی ابنو ام بهی علی یون عليه السلام.الذی صفات علی عليه علی السلام علیی که علیی که الذی نسبه او علی مندل است که نسبه او نسبه او چی نسبش کرد آه منسوش کرد علیگی که نسبه هو فعل و مفتول نسبه در حالی که علم باشد لل اسلام برای اسلام علم و نشانه قرار داد او را برای اسلام علم علم اسلام و نشانه اسلام علی رو براد اون رو به عنوان نشانه اسلام بعد از خودش نها علامت و بعد از نبی اکرم برای راه‌یابی به سرچشمه اسلام آقا امیرون شما می دانید صاحب این کتاب سمدیه که کیست؟ مرحوم شیخ بهایی شیخ بهایی بزرگ و یکی از فقهای های درجه اولشیه در دوران زمین مردی که بزرگتر از نیست. در جمیع علوم زمان خودش جزه نفراتیه که فرده یعنی حتی دوم هم حالا حکایات شیف بها مشهوره شما میتونید از کتاب هایی که حتی در این زمینه نوشته شده استفاده کنید ببینید که شیف بها جه آدم عظیمی بوده دیگه من زیاد در خصوص صحبت نمیم الازی نسبه ها علمم به اسلام هر که او رو علم برای اسلام قرار داد حالا کی علم برای اسلام قرار داد فائل نسبه ها کیه؟ پیغمبر اکرم یعنی فاعلش زمین و هوا است که برمی‌گردد به محمد یعنی یع و رفعه او رفعه یعنی چی؟ بلند کرد و بلند کرد علی را پیغمبر اکرم و رفعه او لکسر نعاصنام و بلند کرد سلام علی را برای شکستن کسر اسنام شکستن بودها برای شکستن بودها علی را از زمین کنند اشاره داره به داستان فتح مکه که موقع که مکه فتح شد بودها رو بر خانه خدا آویزون کرفت بودن علی رو بیام بر اکرم بر دوشه هیچ گرفت برند کرد و بودها رو از بالای خانه خدا به زمین هم دارد. کسی که پیغمبر او رو بود شکن کرد ابراهیم قرار داد در بعد از پیغمبر ببینیم حتی به یک ساعت هم نکشید. حتی در زمانی که خود پیغمبر زنده بود و نو گفت برام کاغذ بیارید قلم بیارید یه چیزی بنویسم که لعاقل شما بعد از من به چقراست ننید و راه نشید اون شخص پرگشت گفت این نر رجلل اون این مرتب داره و به خدا داره هزیان کسی که در زمان حیات بیغمبر بگه این نر رجلل یحجور میشه بهش اعتقاد داشت به اینکه که آیا به کلمات معتقد بود کسی که در حق پیغمبر اکرم بگه ازیان هم میگه ما حتی در حق پیغمبر اکرم صحوه در نماز رو قبول نداریم که پیغمبر و هم ممکن بگه چون کسی که صحوه میکنه گناه کنن, کنن. از هیچ کنه خطای دیگر نیست بقیش میتونه خطا کنه حال و رفعهو و رفعهو او از به جای نصبهوی نصبهو سله بود اینم چی حساب میشه؟ سله و بلندش کرد به بر اکلم برای شکستن خودخان لیکست متعلقه به رفعهوز این جازم با صفت علی است گفتیم علی علیه السلام که این صفت رو داشت به عنوان نشانه اسلام قرارش داد پیغمبر و برای شکستن بودها بردوشتیش بود و بلند جازم و اعناق نواسه به لعام جزمه یعنی قطع قطعه این علی علیه السلام جازم بود یعنی چی؟ قاطع بود صفت نیشه قاطع بود چی رو قاطع بود؟ اعنا، جازم و اعناق اضافه شده اعناق جازم جزم دهنده و قطع کننده گردن‌های نواسب نواسب جمع ناسبی ناسبی یعنی کسی که نسبت به خاندان نبی اکرم غذب دارد و بد و بیراه میگوید گوید ناسبی است جازم و اعناق نواسبه نواسبی که این صفت رو دارم صفت بعدی اندعام صفت نواسبه لعام مثل کرام که جمع کریم بود لعام جمع لعیمه یعنی کسی که پست و دنیگی و است. هست پس پترت و دنیگی و سفت نحیم هست بد ساد جازم و شما تو بعضی از جنگ هایی که آقا امیر و مومین با یهودی ها داشتن نگاه کنید ببینید چگونه گردن می کنید جازم و صفت بعدی آقا امیرالمومنین که در خصوصش تو همبر بحث ادایمون بحث کردیم وازه و علم نهبه وازه و علم نهبه این وازه علم نهبه است آقا امیرالمومنین المومنین وازه علم نهبه است کسی است که اولین بار علم نحو رو کرد. کرد. پای ریزی کرد بعد اول اسفل و دیگران و دیگران و دیگران تا امروز روز که مادرش هستیم بر این نحالی که همی رو همی بر زمین نهاد اونها شاخ و برد تحقیق و وازه و حتی به جای جازم و صفت علی حسابه شد وازه و علم نه حالا این علم نه رو واسه چی؟ وضعش کرد آقا همی له مومنین متعلق به وازه وضع کننده علم نه هست لحفظ کلام. برای حفظ کردن کلام برای حفظ قواعد و اصول عرمی که اگر این گرامه نبود لغت عرب لغت فسیحش چی می شود؟ باید و علم نحوه لحفظ ال... کلامه برای حفظ کردن کلام این رو شد حالا نگاه کنی خیر از این که این مقدمه رو من براتون نگاه کنی می احسن و کلمتن او به حل کلام می خودش یه فرمانه است آخرش چی داره می ها کلام مسجو کلام دارای سجع شما حتما تو فارسی دیدید میتونید به گلستان سعدی مراجعه کنید احسن و کلمتن یوبتدعو به حل کلام که وقف میکنن واسه خاطری که صنج و خیر و خی رو خبرن یوخته موبهل مرام که الله هم جزیل النعم و سلام و سلام دله اسلام و رفع عبودت کسر ال اسنام جاز ما اعناق نواصب لعام و علم النحو لحفظ الكلام کلام موزون است بعضی دارد و سجع آخر دارد ها این کلام از نظر شیبایی چیه زیباس نکته بعدی اینه تو این کلام براعت استهلال وجود دارد یه صنعتی است مثل مثلا صنعت تضاد صنعت جناس که شما سلام دارین بود ممکنه شنیده باشی صنعتی هم داریم که لفظ و زیبا میکنه و هنر ورانه میکنه به اسم براعت استال براعت با این و استقلال با ح و چشم براعت کدومه؟ این که الان که ما نمیدونیم که کتاب سدییه در چه خصوصی میخواد با ما صحبت کنه شما میدونید نه ما نمیدونیم کتاب کتاب نحوه کتاب چیه صرف کتاب چی برای استقلال اینه که انسان گوینده یا نویسنده در ابتدای کلام خودش جوری سخن رو بگه که داره هم میکنه، سنا میکنه، یه چیز دیگه میگه. ولی اگر انسان دقت کنه از با کلام او میفهمد که این کتاب و این خطبه در چه مورد در چه الی الان شما نگاه کنید احسن و کلمتن اول از چی شروع شد کلمه علم نقل از چی شروع میشه کلمه و کلام موضوع علم نقل کلمه و کلام احسن و کلمتن یبتده و به حل کلام خیر و خبرن با اون یبتده و از یبتده و مبتده خیر و خبرن خبر تو کدوم علم ما محتدام و خبر داریم یختتم <تصفيق> و به المرام همدو که اللهم علا جزیل انا و السلاط و السلام علا سید الانام محمد و آلیه البررت کرام سیگم و ابن عمیه جن علیه السلام اللذی نسبه بود کدوم این نسب دادن هست این نهبه این نجا به معنی دیگه بکار رفته بلی نگاه کنید اشارات نسبه ها علمن تو کدوم ما علم داریم اسم علم ها به اسامی معرفه یک قسمش چیه علمن بلستر رفعه ها ببینید رفعه علامت اعراب دوم لکسر علامت اعراب زپن. کسر اصنام جازم. کدوم علمه که جازم دوشه و نواصب کدوم علمه که نواسب داره ها؟ و علم نه. یعنی شما به اینجا که میرسید قبلش باید با این اشارات پی به این مطلب بوده باشید که این کتاب ما در خصوص علم نهوه و آخرش هم نگفته در خصوص علم نحوه گفته که علی پایگذار علم نهوه هم, هم. این اشاره تقریبا آشکارتر است، بر این که این کتاب ما در خصوص علم میشه کن براعت و بعد این و بعد هم بوده و اما بعد چون کتاب مختصر نوشته شده بعضی چیزها اصل شده دلیلش همون فرحازیهیه ببینید و آمده و این نشون میده که هممایی چی شده چون مسته وربکه فکبر وربکه فکبر بوده چی؟ و اما ربک فکبر ربکه مفهول بره و اگر ورفا مقدم شده به خاطر اینکه امای اون اول کلام بوده و بعد فهازهی الفوائد و زمدیتو یا الحدای و سمدیت. این کتاب کتاب چیه؟ الفوائد و زمدیتو پس اگر شما می بینید که تا دارد سمدی گفته نشده سمدی یه گفته شده است بدان جهته که چی؟ که اسمسووفی داشته و اون موسوف جمع بوده و به اعتبار جماعتش مفرد معص حساب شده. گفتیم سبد. فاضحی الفوائد جمع فائده. این فاعده هایی است که منسوب به سم است. از سمدیت. این فائده های سمدیه در چه خصوص فایده است میگه فی علم العربیت در علم العربیه اینها فایده فائده هست است، هاییست بهره در علم العربیه فی علم العربیت علم عربیت منظور همون علم نحب است که تا یک مدت مدیدی علم نه شامل بقیه علم همزایی حدی می شد مخصوصا سر در برداشت و بهش اطلاق علم عربیه یه می کردن بعد علم عربیت جدا شد شرخ های مختلف پیدا کرد یک قسم شد فی علم العرب حبد هوا یهوی هوا یهوی ما تو پارسی اسمان می کنیم یعنی چی جامع در بردی هوت یعنی جمعهد جمع کرده است این فواید سمدیه منها زلفن زمیر هوت میخوره به فواید سمدیه جمع کرده این فواعد سمدیه منها زلفنه از این فن قلوب فن فنه؟ نه جمع کرده است از این فن نه ما مفهول جمعهد جمع کرده است از این علم نهر آنچرا که نفعه اعم و... نفعش چی بوده؟ اعم بوده تر بوده یعنی ما اومدیم نکات مهم نهر جا اونایی که نفعشون اعم و اعم بوده و شما هر عبارتی رو مخواستید بخونید محتاج به او بودید اونها رو بیان کردید بله اون شاز و شباز هایی که ممکنه در طور عمرتون سه چهار مرده بیشتر باز پرخورت نکنید در این کتاب پیدا ما نفعه اهم و معرفته للمبتدین اهم جمع کرده آنچه را که معرفتش یعنی شناختش برای این برای این اونهایی که چیه؟ مبتدی هستند بازه میخوان شروع در حلوه نه مهتده این اهم اونها باید اینها رو مهمتره براشون بدارن و معرفت در اینه اهم بود. خب این چه قطع... چه... چقدر مطلب توی این است میگه و تزم مند ده غیر منسل جلیلتن صفت شد و تزم و در زمن خودش گرفته تزمند یعنی تزمن کرده در زمن خودش گرفته در داخل خودش حبس کرده تزمند فوائده و یک سری فاعده هایی رو در زمن خودش گرفته الان فاعل تزمند کیه؟ هدایق سمدیه زمیگی که هدایق سمدیه میخوره فوائد سمدیه دربر گرفته این سمدیه فوائدی را که این فوائد جلیل است بزرگ است عظیم هست, هست. جلیل در چه رابطه ای هست این فوائد جلیل میگه فی قوانین عرب، در قوانین جمع قانون آه؟ اصل لفظش یونانی قانون و عبارت است از یه کلام کنیم که منطبق بر جزئیات متعددی میشه مثل اینکه میگیم هر فائلی مرفوع است این کلام کلیه و بر جزئیات متعدد که اینها واقع شند فاعل واقع قابل تطبیق قانون فی قوانین اعراب در قانونها و کلیات قواعد اعراب اعراب یعنی اینکه آخر کلمه رو چجور بخونیم علم و اعراب یعنی علم نه قوانین اعراب یعنی قوانین نه چون نه به که اعراب پس دربر گرفته فوائدی جلیل در قانونهای اعراب و فرائده فرائد اطفاست به جای فواید و دربر گرفته فرائدی را فرائد جمع فریده است و فریده یعنی یک تا. بی همتا و اصلش بوده دررتون فریدتون فریده که میگن یعنی دررتون فریده یعنی گوهر بی همتا باز اون سفر افتاده محصوف جاش نشه اونس همه هر قدار فواهد یعنی گوهرهای بی همتا ایرا. گوهرهای بی همتایی رو در زمن خودش گرفته مثل صدفی میماند که گوهرهای بی همتا درون اوست فرائدی که این صفت رو داره نگاه کنی لم یطلع صفت لم یطلع علیها اطلع یطلع یادتونی یعنی از تای منخوته تبدیل به تایه معلوم شد به خاطر این که فاولفه تا لم یدتل علیها الا اولوالباب فوا... فرائدی که گوهرهای بی همتایی که لم یدتل علیها اطلاع پیدا نکرده است بر این گوهرها بر این فرائد اطلاع پیدا نکرده است مگر کی مگر اولوالباب صاحبان خرد ان. الباب جمعه لبه لبه یعنی منقصه اقل اولول الباب اولو یعنی صاحب فائل لمیتده لمیت علیه ها صفت فرائد رابطش کدومه های علیه ها فرائدی که اطلاع پیدا نکرده است برانها مگر اولول الباب صاحبانه میگه وزع توها لعخل اعزه وزع توها یعنی علف توها وزع کتاب یعنی تعلیف کتاب وزع به معنای نهادنه ولی در مورد کتاب و نامه و اینجورتزا به کار به معنای تعلیف وزع توها یعنی علف توها نوشتم این کتاب رو کتاب نوشتم این فواعد سمنی را برای کی نوشته؟ للاخ برای اون برادر الْعَخ برای اون برادری که عزیز عزیزتر از هم است دوست داشتنی تر از همه است اون کی بوده لِلْعَخِ الْعَز عبدالسمد اسمش بوده چی اون آقا؟ عبدالسمد برای عبدالسمد نوشتم که است عزیز برادریست است. قایلند که عبدالسمد برادر کوچک آقای شیخ بها بوده و این کتاب رو برای در این خصوص نشده این به تعلیم تحرم و تعلیمش علامه مند و وضعت و حالل اخل عز عبدالسمد عطوریان است برای اخل عز بعد دعا میکنه او رو. میگه جعله الله من العلماء العامدین هست جعله الله قرار دهد او را این جمله دعاییه خدا مثل ایده که الله تعالی است قرار دهد او را خدا من. الله فاید جعله هست و مفهول عربه شد جعله دو مفهول منل علماء مفضل سامشه یعنی خدا او را قرار دهد در زمره علماء اما نه فقط این رو یاد بگیره الالم بلا عالمی که عمل را ندارد تو بعضی برایات داره که بیتن بلا سمت. مثل کنه مونه که سمت نداره که قوسن بلاوتر مثل کمانی میمونه که اون زهش و با, با با یعنی اون که انصر اصلی کار وجود ازا میگه منال علماء الاملین از علماء عمل کنندهی به علمش قرار جعله هملا منال علماء الامل. اینگه دعا در حق در آقای عبدال بعد و نفع احوبه ها دعای دو خمه و نفع دهد خدا عبدال سمد را به ها به سبب این کتاب فوائد سمدیه خدا به سبب این کتاب برون نفعی برسانه فقط به اون نفع برسانه نفع احوبه ها و جمیع به جای خواهی نفع نفع ها و جمیع المؤمنین و همه مومنین رو و مومنات رو که با این کتاب سر و کار دارن میگه خدا انشاءالله به اونها ای در این جاویته باست و نفع احوبه ها و جمیع المؤمنین میگه و تشتمه رو علا خمسه هدا اقه. و است این کتاب فواهد سمویه بر خمس حدایقه یعنی چی؟ پنج حدیقه خمس حدایقه حدایق جمع حدیقه است چون وزن مساجد بوده فعایق بوده غیر منصرفه لذا در حالت جمعی جرمش به چی میاد؟ به فتحه چه حدای قرد تنویرم و, و چون مفردش حدیقه بوده مهنس بوده عددش چی اومده؟ خمس اومده بدون تا دیگه با تا نیاد و تشتمه رو علا خمس حدای قرد اله حدیقه تول اولا حدیقه اول که بگذاریم؟ زیرا دوم